مصنوی معنوی مولوی برنامه 82. دوم یافتن عاشق معشوق را و بیان آنکه جوینده یا بنده بود. کانجوان در جستجو بود هفت سال از خیال وصل گشته چون خیال سایه حق بر سر بنده بود عاقبت جوینده یا بنده بود گفت پیغمبر که چون کوبی دره آقبت زندر برون آید سره چون نشینی بر سر کوه کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی چون ز چاه میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک جمله دانند این اگر تو نگری، هر میکاریش روز بدروی سنگ بر آهن زدی آتش نجست این نباشد ور به باشد نادر است آن که روزی نیستش بخت و نجات ننگرد اقلش مگر در نادرات کن فلان کس کشت کرد و بر نداشت وان صدف برد و صدف گوهر نداشت. بل امه با اور و ابلیس لعین سود نامتشان عبادتها و دین. صد هزاران انبیا و رهروان نایدن در خاطر آن بدگمان. این دور که تاریکی دهد در دلش ادبار جز این کینه هد. بس کسا که نان خورد دل او مرگ او گردد بگیرد در گلو پس تو ای ادبار رو هم نان مخور تا نیفتی همچو او در شور و شر صد هزاران خلق نان ها می خورند زور می آبند و جان می پرورند تو بدان نادر کجا افتاده ای گر نه محرومی و عبله زاده ای؟ این جهان پر آفتاب و نور ماه او بهشته سرفرو رو برده بچه که اگر حق است پس کو رو شنی سرز چه بردار و بنگر جمله عالم شرق و غرب آن نور یافت تا تو در چاهی نخواهد بر تو تافت چهره ها کن رو به ایوان و کروم کم ستیز اینجا بدان کلل کل جشوم هین مگو کی نکفلانی فلانی کشت کرد در فلان سال ملخ کشتش بخرد پس چرا کارم که اینجا خوف هست من چرا افشانم این گندم زده است وان که او نگذاشت کشت و کار را پر کند کوری تو انبار را چون دره می کفت او از سلوته آقبت در یافت روز خلوته جست از بیم اساس شب او بباغ یار خود را یافت چون شم او چراغ گفت سازنده سبب را آن نفس ای خدا تو رحمته کن بر اساس ناشناسا تو سبب ها کرده ای از در دوزخ بهشتم برده ای بهر آن کردی سبب این کار را تا ندارم خار من یک خار را در شکست پای بخشد حق پره همز قره چاه بک شاید دره تو مبین که بردرختی یا بچه تو مرا بین که منم مفتاح راه گر تو خواهی باقی این گفتگو ای اخی در دفتر چارم بجو مجلد چهارم هم از مصنوی ای زیا الحق حسام الدین تویی که گذشت از مه به نورت مصنوی همت عالی تو ای مرتجا می کشد این را خدا داند کجا گردن این مصنوی را بستهی می کشی آن سوی که دانستهی مصنوی پویان کشنده ناپدید ناپدید از جاهل کشنیست دید مصنوی را چون تو مبدع گر گرفزون گردد تو اش ای، چون چنین خواهی خدا خواهد چنین می دهد حق آرزوی متقین کان لله بودهای در مزا، تا که کان الله پیش آمد جزا مسنوی از تو هزاران شاکر داشت در دعا و شکر کفها برفراشت در لب و کفش خدا شکر تو دید فضل کرد و لطف فرمود و مزید زان که شاکر را زیادت وعده است آنچنان که قرب مزد سجده است گفت وسجد وقت وقترب یزدان ما جان شد سجده عبدان ما گر زیادت می شود زین رو بود نز برای بوش و های و هو بود با تو ما چون رز به تابستان خوشیم حاکم داری این بکش تا می کشیم خوش بکش این کاروان را تا به حج ای امیر صبر مفتاح الفرج حج زیارت کردن خانه بود حج رب البیت مردانه بود زان زیا گفتم حسام دین تو را که تو خورشیدی و این دو وصف ها که این حسام و این زیا یکیست هین طیق خورشید از زیا باشد یقین نور از آن ماه باشد وین این زیا آن خورشید این فروخان از نبا شمس را قرآن زیا ای پدر وان قمر را نور خواند این را نگر شمس چون عالی تر آمد خود ز ماه پس زیا از نور افزوندان بجا بس کسن در نور مه من حج ندید چون برآمد آفتاب آن شد پدید آفتاب اعواز را کامل نمود لاجرم بازارها در روز بود تا که قلب و نقد نکاید پدید تا بود از غبن و از حیله بعید تا که نورش کامل آمد در زمین، تاجران را رحمتا للعالمین لیک برقلاب مبغوز است و سخت، زانکزو شد کاسدو را نقد و رخت. پس عدوه جان صراف است قلب، دشمن درویش که بود غیر کلب انبیا با دشمنان بر میتنند بر ملایق رب سلم میزنند کین را که هست و نورکار از پف و دمهای دزدان دوردار. دار دزد و قلاب است. خسم نور بس زیندو ای فریاد رس فریاد رس روشنی بر دفتر چارم بریز کافتاب از چرخ چارم کرد خیز هینز چارم نور ده خورشیدوار تابه تابد بر بلاد و بردیار هر که شفسانه بخان دفصانه است وان که دیدش نقد خود مردانه است آب نیل است و به خون نمود قوم موسا را نخون بود آب بود دشمن این حرف این دم در نظر شد ممثل سرنگونن در سقر ای زیا الحق تو دیدی حال او حق نمودت پاسخ افعال او دیده غیبت چو غیب تو استاد کم مبادا از این جهان این دید و داد این حکایت را که نقد وقت ماست گر تمامش میکنی اینجا رواست ناکسان را ترک کن بهر کسان قصه را پایان برو مخلص رسان این حکایت گر نشد آنجا تمام چهارمین جلد است آرش در نظام تمامی حکایت آن عاشق که از اساس گریخت در باغ مجهول خود معشوق را در باغ یافت و اساس را از شادی دعای خیر می کرد و می گفت که ان انتکرهو شیعن و هو خیرون لکم اندران بودیم کان شخص از اساس راند اندر باغ از خوف فرس بود اندرباغ آن صاحب جمال که از غمش این در انا بود هشت سال سایه او را نبود امکان دید، همچو انقا وصف او را میشنید جز یکی لقیه که اول از قضا وی افتاد و شد او را دل ربا بعد از آن چندان که میکوشید او خود مجالش می نداد آن توند خوب نہ بلا چاره بودش نه به مال چشم پر رو بی تمع بود آن نهال عاشق هر پیشه و مطلب حق بیالود اول کارش لبه چون بدان آسیب در جست آمدند پیش پاشان مینهد هر روز بند چون در افغاندش به جست و جوه کار بعد از آن در بست که کابین بیار هم بران بومیتنند و میروند هر دم راجی و آیس میشوند هر کس راه هست امید برای که گشادندش در آن روزی دره باز در بستندش و آن در پرست بر همان امید آتش پا شده است چون در آمد خوش در آن باغ آن جوان خود فرو شد پا گنجش ناگهان مر اسس را ساخته یزدان سبب، تازی بیم او دود در باغ شب، بیندان معشوقه را او با چراغ، طالب انگشتری در جوی باغ. پس قرین می کرد از زوق آن نفس، با سنای حق دعای آن اساس که زیان کردم اسس را از, از گریز بیست چندان سی بر بروی بریز از اوانی مر را آزاد کن آنچنان که شادم او را شاد کن سعد دارش این جهان و آن جهان از آوانی و سگیش وارهان گرچه خوی آن اوان هست ای خدا که هماره خلق را خواهد بلا گر خبر آید که شهر جرم نهاد بر مسلمانان شود او زفت و شاد بر خبر آید که شهر رحمت نمود از مسلمانان فگند آن را بجود ماتم در جان او افتد از آن صد چونین ادبارها دارد اوان. او اوان را در دعا در میکشید، کشید که از اوان او را چنان راحت رسید بر همه زهر و بر او تریاق بود آن آوان پیوند آن مشتاق بود، پس بد مطلق نباشد در جهان، بد به نسبت باشد این را هم بدان. در زمانه هیچ زهر و قند نیست که یکی را پا دگر را بند نیست، مریکی را پا دگر را پای بند مریکی را زهر و بر دیگر چقند زهر مار آن مار را باشد حیات نسبتش با آدمی باشد ممات خلق آبی را بود دریا چوباغ خلق خاکی را بود آن مرگ و داغ همچنین بر می شمار ای مرد کار نسبت این از یکی کس تا هزار زاید ان در حق آن شیطان بود در حق شخص دیگر سلطان بود آن بگوید زید صدیق سنی است. وین بگوید زاید گبر کشتنی است. زاید یک ذات است. بر آن یک جنان. او بر این دیگر همه رنج و زیان. گر تو خواهی کوترا باشد شکر، پسورا از چشم اشاقش نگر من گر از چشم خودت آن خوب را بین به چشم طالبان مطلوب را چشم خود بربند بند زان خوش چشم تو آریت کن چشم از اشاق او زو کن آریت چشم و نظر پس چشم او بروی او نگر تا شوی ایمن ز سیری و ملال گفت کان الله الله زین جلال چشم او من باشم و دست و دلش تا رهد از مدبری ها مقبلش. هرچه مکروه است چون شد او دلیل سوی محبوبت حبیب است و خلیل. حکایت آن واعظ که هر آغاز تذکیر دعای ظالمان و سخت دلان و به اعتقادان کردی. آن یکی وائز چو بر تخت آمده قاطعان راه را دایی شده دست بر می داشت یا رب رحمران بر بدان و مفسدان و تاغیان بر همه تسخركنان اهل خیر بر همه کافر دلان و اهل دیر می نکردی او دعا بر اصفیا می نکردی جز خبیسان را دعا. مرورا گفتند کین این معهود نیست. دعوت اهل زلالت جود نیست. گفت نیکویی از اینها دیدم. من دعاشان زین سبب بگذیدم. خبس و ظلم و جور، چندان ساختند که مرا از شر به خیر انداختند. هرگهی که رو به دنیا کردمی، من از ایشان زخم و ضربت خردمی. کردمی از زخم آن جانب پناه، باز آوردندمی گرگان براه. چون سبب ساز سلاح من شدند، پس دعاشان بر من است، ای هوشمند، بنده می نالد به حق از درد و نیش، صد شکایت می کند از رنج خیش. حق همه گوید که آخر رنج و درد مرتو را بکنان و راست، کرد. این گله زن نعمتی کن که زند از در ما دور و مترودت کند. در حقیقت هر عدو داروی توست، کیمیا و نافع و دلجوی توست، که از او اندر گریزی در خلا، استعانت جویی از لطف خدا. در حقیقت دوستانت دشمنند که ز حضرت دور و مشغولت کنند. هست حیوانی که نامش اشغر است. او به زخم چوب، زفت و لمتر است. تا که چوبش میزنی به می شود او ز زخم چوب فربه میشوند نفس مؤمن اشغور آمد یقین کو به زخم رنج زفت است و سمین زین سبب بر انبیا رنج و شکست از همه خلق جهان افزون تر است. تازه جانها جانشان شد زفت تر که ندیدند آن بلا قوم دگر. پوست از دارو بلا کش می شود چون ادیم تایفی خوش می شود. ورنط و تیز مالی دیدرو گندگشتی ناخوش و ناپاک بو آدمی را پست نامدبوغ دان از رطوبت ها شده زشت و گران تلخ و تیز و مالش بسیار ده تا شود پاک و لطیف و با فره ور نمی تانی رزاده ای ایار گر خدا رنجت دهد به اختیار که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست چون صفا بیند بلا شیرین شود خوش شود دارو چو سهت بین شود بارد بیند خیش را در عین مات پس بگوید اقتلونی یا سقات این اوان در حق غیر سود شد لیکن در حق خود مردود شد رحم ایمانی از او ببریده شد کین شیطانی بر او پیچیده شد کارگاه خشم گشت و کینوری کینه اصل زلال و کافری